دیگه روایاتی دیگه از امام باقر علیه السلام از توحف العقول تو بخش وصایا سفارشات امام باقر علیه السلام به جابر جوفی جابر جوفی میدونید از اصحاب سر امام باقر علیه السلام بود جابر جوفی برای امام باغر مثل سلمان فارسی برای امیرالمومنین مثل کمیل برای امیرالمومنین اینا آدمایی بودن ها. قال الباغر عليه السلام یا جابر ان انا ان عین و نون و یا سختی و دشواری معنی یعنی اسم مفعول از انا سختی کشیده شده دشواری رو تحمل کرده یعنی چی؟ یعنی تیتیش ممانی نازک نارنجی خیلی همچین مسلمان زربرقیه خیلی جیگلما آب نیست منظورم چیه؟ نه ترتمیز نبودن یعنی بعضی ها خیال میکنن آبا آسته براسته بیا که من آرون خوابم سر ساعت استراحتم سر ساعت غذام به موقع این حرفان نیست می آدمو ناز پرورد تنعام نبرد رهب دوست آشقی شیوه رندان بلاکش باشد باید بسوزین مرحوم سقیر اسبانی میگه اجب زیباس، نالیدن محجوران سوز دگری داره، آهی که زد دل خیزد بر دل اثری داره، خدا بندگانی را که میخواهد آه آتشین داشته باشد الهی سیده ایده آتش افرو در اون سینه دلی بان دل همه سوز دلی که آه از اعماغ جان در محضر امام صادق بود یه حدیث رو دقت کنید آتش به جان آدم میزن در محضر امام صادق علیه السلام بود یه آه کشید یه بنده خدایی بود آه یکی خاص به اون آقا اعتراض کنه که چرا در محضر امام مثلا اینجوری ناراحتیتون رو نشون میدید امام فرمود خدا رو صدا زد آه اسمی از اسمای الهیه امام صادق فرمودد یعنی وقتی دل میسوزد از اعماق وجودش ناله سر میده یعنی داره خدا را صدا میکنه منتها زبان حال این صدا آهه این دل شکسته که فرمود من در قلب کسرم من در دل شکستهام اگه میخوایید منو پیدا کنید اونجا ببینید یعنی این حالتی که در این دل باد پیدا بشه این با ناز... نارنجی بودن و با خیلی خوابم سر ساعت باشه خوراکم سر ساعت باشه همه چیزم روبرا با, با نظم زندگی منافات ندارا بد برداشت نشه نه به قول حافظ در شط حادثات برون آی از لباس که اول شرط شناوری برهنگیست میخوای شناور بشی لباس بکن بنداز دور نمیشه اینا رو داشته باشی شنا کنی میخوای به مقام غرب حق برسی میخوای این ها را پیدا کنی؟ میخوای بپذیرنت باید سختی رو تحمل کنی؟ لذا یا جابر ان المؤمن معنی به مجاهدة نفسه مؤمن سختی کشنده است رنج تحمل کرده است برای مجاهدت نفسش یعنی این هواهای نفس این تمایلات این خودخواهی ها، این منیت ها، این بعد خطرناک شیطانی که در دنیای وجود من داره زبانه میکشه، کشه سختی درگیری با اینها رو تعمل میکنه. کنه لیقلبها هواها تا اینکه نفسش را بر هوایش غلبه بده فمرتن یقیما عودها فمرتن گاهی یه دفعاتی یقیم ما عبده ها، عبد یعنی کجی، این کجی نفس را، این بدی نفس را، منظور هواها و های حیوانی رو، فمرتن یقیم ما عبده یه دفعاتی، یه واقعهایی، این کجی ها رو را راست میکنه، تو مسیر میاره، و یخالف هواها فی محبت الله و مخالفت میکنه با هوای نفس به خاطر محبت خدا. یعنی حتی ارزش میده ارزش بالاتر از خوف و رجا محبت و مرتن تسرعه نفسه فیتبه و هواها و مرتن و گاهیم یه دفعاتیم نفس نفسه نفسشو رو زمین میزنه یعنی مؤمن اینجوریه فکر نکنین همیشه مثلا یه وقت هم اگه زمین خورد حالا بگه من دیگه فاسقم نه ممکنه یه مؤمن حالا داره با نفسش در میفته فمرتن یه دفعاتی یقیم و عبدها نه میتونه کجی رو راست کنه تو مسیر بیاره با نفس در میافته، اما یه وقتایی هم زمین میخوره نفس او، نفسش رو میندازه زمین فیعتبه او هواها از هواش تبعیت میکنه ولی چون مومن است حرفای قبلی ایان اشه الله الله خدا دستگیری میکنه حالا که خرد زمین خدا میگه دست بده بگیرمت پاشو میخوام بلندت کنم فینتعشو او هم دستشو میده دستشو میگیره یعنی یه وقت خدا دست راز میکنه ما دستمونو نمیدیم این خطرناکه میگه مومن اونه اگر زمین خورده خدا به راحتی ولش نمیکنه میگه بده دستو بده صد بار اگر توبه شکستی بازا ای حدیث از امام باغر امشب خوندم خدا میگه بندم ردت نمیکنم دوست دارم بیا بیا دستو بده بگیرمت ولی وای بر من که دست دراز نمیکنم قبول نمیکنم نمیگیرمش حضرت فرمود مؤمن دست شده راز میکنه دست میده فینته اشو و یغیل الله اسرته حالا که افتاده زمین گاهی همین افتادن های زمین خدا میگه ها خردی زمین طرف مثلا یه گناهی کرده یه وقت میگه خب چه کنیم آقا دیگه مگه ما معصومی بشر همینه دیگه این خطرناک این خطرناک اما یه وقت گناهی کرده شب جمعه هست. دل شب روز عرفه است شب قدره یواشکی یه, یه گوشه خلوتی میگه خدایا گرفتارم خدایا آلوده شدم خدایا افتادم خدایا زمین خوردم این فرد روایت داره که مظنب مذنب طاعب مزنبی که گناهکاری که حالت توبه داره و شرمنده است از مطیع مقرور و عوجدار بالاتره یعنی یه وقت هم از اون بریم. ما که اله هم نمازامونو خوب میکنیم. نه یه وقت میگه خدایا من افتادم خدا میگه دست بده من بگیرم دستو دراز کنه حالا خدا چه میکنه و یغیل الله او خدا اسرتش لغزش رو اقاله میکنه اقاله میکنه یعنی چی کنار میزنه برطرف میکنه خداوند اسرتش و لغزتش رو میبخشه فیتذکر و فا داره نتیجه این دستگیری خدا و او هم دستشو به خدا میده خدا هم اقاله میکنه اسرتش رو چیه حالا متذکر میشه یعنی مطالب تو یادش میاد. متوجه. و یفزه او الاد توبه. کشیده میشه به طرف توبه. هزه در توبه پیدا میکنه. بعضیا دیدید حال توبه نداره گناه کرده. میخواد توبه کنه. حال توبه نداره. ولی بعضیا توبه کردن. بعد از توبه هم گناه نمیکنه. همه الحمدلله. جبران کرده. ولی تا باز میگی گناه و توبه میلرزه. این فضعه در توبه است. چرا؟ میگه خدا این کارو براش میکنه. ول مخافه خوف پیدا میکنه. داد و بسیرتن و معرفتن. پس نتیجهش این میشه که بسیرت و معرفتش بیشتر میشه. زیاد میشه. لما زید فیه من الخوف؟ چرا؟ به خاطر اینکه خوفش زیاد بوده. یعنی وقتی این خوفو پیدا میکنه خدام بسیرت بهش میده. خدا هم معرفتشو زیاد میکنه و زالکه به ان الله یا قول امام باقر فرموده این همونی است که خدا تو قرآن فرمود تو قرآن چی فرمود مسوله اعراف آیه دویست ان لذی نتقو ازام مسهم تا افون من الشیطان تذکر او و ازام مبصرون کسانی که تقوا پیشه میکنن وقتی شیطان دوره برای اینا میگرده و شیطان اینارو در بر میگیره اینا متذکر میشن وقتی متذکر میشن بسارت پیدا میکنن